اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الیف لامیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر الیف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم معبودی جز خداوند یگانه زنده و پایدار و نگه نیست نزل عليك الكتاب بالحق مصدق لما بین یدیه و انزل التورات والانجیل. همان کسی که کتاب را به حق بر تو نازل کرد که با نشانه های کتب پیشین منطبق است. و تورات و انجیل را من قبل هدل للناس و الفرقان این الذین كفروا بی الله لهم عذاب شدید والله عز ذو پیش از آن برای هدایت مردم فرستاد و نیز کتابی که حق را از باطل مشخص میسازد نازل کرد کسانی که به آیات خدا کافر شدند کیفر شدیدی دارند و خداوند برای کیفر بدکاران و کافران لجوج توانا و صاحب انتقام است این الله لا یخفا علی شیعن فی الارض ولا في السماء هیچ چیز در آسمان و زمین بر خدا مخفی نمی ماند هو الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ في لا اله الا هو العزیز الحکیم. او کسیست که شما را در رحم مادران آنچنان که میخواهد تصویر می کند. معبودی جز خداوند توانا و حکیم نیست هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم, الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة إِنَّ فِي الْفِتْنَةِ وَبِتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلِّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ او کسی کسیست که این کتاب آسمانی را بر تو نازل کرد که قسمتی از آن آیات محکم است که اساس این کتاب می باشد و قسمتی از آن متشابه است آیاتی که به خاطر بالا بودن سطح مطلب و جهات دیگر در نگاه اول احتمالات مختلفی در آن میرود ولی با توجه به آیات محکم تفسیر آنها آشکار میگردد اما آنها که در قلوبشان انحراف است به دنبال متشابهاتند تا فتن انگیزی کنند و مردم را گمراه سازند و تفسیر نادرستی برای آن می‌طلبند در حالی که تفسیر آنها را جز خدا و راسخان در علم نمی‌دانند می‌گویند ما به همه آن ایمان آوردیم همه از طرف پروردگار ماست و جز صاحبان عقل متذکر نمی شوند ربنا لا توزیق قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هبلنا من لدن که رحمه اینکه انت الوهاب راسخان در علم میگویند. پروردگارا دلهایمان را بعد از آنکه ما را هدایت کردی از راه حق منحرف مگردان و از سوی خود رحمتی بر ما ببخش زیرا تو بخشنده‌ای ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد پروردگارا، تو مردم را برای روزی که تردیدی در آن نیست جمع خواهی کرد، زیرا خداوند از وعده خود تخلف نمی کند. ما به تو و رحمت بی پایانت و به وعده رستاخیز و قیامت ایمان داریم. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود نار ثروتا و فرزندان کسانی که کافر شدند نمیتواند آنان را از عذاب خداوند باز دارند و از کیفر رهایی بخشد و آنان خود آتشگیریه دوزخند گدا بآل فرعون والذین من قبرهم کذبوا بآیاتنا فاخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب عادت آنان در انکار و تحریف حقایق همچون عادت آل فرعون و کسانی است که پیش از آنها بودند آیات ما را تکذیب کردند و خداوند آنها را به کیفر گناهانشان گرفت و خداوند سخت کیفر است قل للذین و و به آنها که کافر شدند بگو از پیروزی موقت خود در جنگ اهد شاد نباشید به زودی مغلوب خواهید شد و سپس در رستاخیز بسوی جهنم محضرخوییت شد و چه بد جایگاهیست. قد كان لكم آيات في فئتين التقتا فئه تقاتل في سبيل الله و أخرى يرونهم يرونهم مثلهم رأي العين والله بنصره من لعبرة در دو گروهی که در میدان جنگ بدر با هم روبرو شدند نشانه و درس عبرتی برای شما بود یک گروه در راه خدا نبرد میکرد و جمع دیگری که کافر بود در راه شیطان وقت بود، در حالی که آنها گروه مؤمنان را با چشم خود دو برابر آنچه بودند می‌دیدند. و خداوند هر کس را بخواهد و شایسته بداند با یاری خود تأیید می‌کند. در این است برای بینایان زِينَ لِلنَّاسِ حُبُ الشَّهَواتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالبَنِينَ وَالقَنَاطِيرِ الْمُقَنَّطَةِ وَالقَنَاطِيرِ الْمُقَنَّطَةِ مِنَ الزَّهْبِ وَالفِضَّةِ وَالخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالنَّعَامِ وَالحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَأْبِبِ محبت امور مادی از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از تلاو و نقره و اسبهای ممتاز و چهار پایان و زراعت در نظر مردم جلوه داده شده است تا در پرتوب آن آزمایش و تربیت شوند ولی اینها سرمایه زندگی پست مادی است و سرانجام نیک و زندگی والا و جاویدان نزد خداست قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدین فیها و مطهره و من الله والله الله بصير بالعباد بگو آیا شما را از چیزی آگاه کنم که از این سرمایه های مادی بهتر است برای کسانی که پرهیزگاری پیش کرده اند و از این سرمایه ها در راه مشروع و حق و عدالت استفاده می کنند در نزد پروردگارشان در جهان دیگر باغهایی است که نهرها از پای درختانش میگذرد همیشه در آن خواهند بود و همسرانی پاکیزه و خوشنودی خداوند نصیب آنهاست و خدا به امور بندگان بیناست الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار هم الكساني که میگویند پروردگارا ما ایمان آورده ایم پس گناهان ما را بیامرز و ما را از عذاب آتش نگاه داد اصحابین و الصادقین و و المنفقین و همانها که استقامت می‌ورزند راستگو هستند در برابر خدا خضوع و در راه او انفاق می‌کنند و در سهرگاهان استقبار می‌نمازند شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم خداوند با ایجاد نظام واحد جهان هستی گواهی میدهد که معبودی جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش هر کدام به گونه ای بر این مطلب گواهی می دهند. در حالی که خداوند در تمام عالم قیام به عدالت دارد معبودی جز او نیست که هم توانا و هم حکیم است ان الدين عند الله الاسلام ومختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكثر بآيات الله فان الله سريع الحساب دين در نزد خدا اسلام است و کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده شد اختلافی در آن ایجاد نکردند مگر بعد از آگاهی و علم آن هم به خاطر ظلم و ستم در میان خود و هر کس به آیات خدا کفر ورزد خدا به حساب او میرسد زیرا خداوند سریع الحساب است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 به گفتگو و ستیز برخیزند با آنها مجادله نکن و بگو من و پیروانم در برابر خداوند و فرمان او تسلیم شده ایم. و به آنها که اهل کتاب هستند و بی سوادان بگو آیا شما هم تسلیم شده اید؟ اگر در برابر فرمان و منطق حق تسلیم شوند هدایت مییابند و اگر سرپیچی کنند نگران مباش زیرا بر تو تنها ابلاغ رسالت است و خدا نسبت به اعمال و عقاید بندگان بیناست این الذین یکفرون بی الله و یقتلون النبیین بی حق و و یقتلون الذین یأمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب علیم. کسانی که نسبت به آیات خدا کفر می و پیامبران را به ناحق می و نیز مردمی را که امر به عدالت میکنند به قتل میرسانند به کیفر دردناک الهی ده اولئی که الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرت و ما, لهم و ما لهم من ناصرین آنها کسانی هستند که اعمال نیکشان به خاطر این گناهان بزرگ در دنیا و آخرت تباه شده و یاور و مددکار و شفاعت کننده ای ندارند آیا ندیدی کسانی را كه ای از کتاب آسمانی داشتند به سوی کتاب الهی دعوت شدند تا در میان آنها داوری کند سپس گروهی از آنان روی می‌گردانند در حالی که از قبول حق اعراض دارند ذلک بانهم قالوا لن الا معدودات في دينهم ما كانوا این عمل آنها به خاطر آن است که می گفتند آتش دوزخ جز چند روزی به ما نمی رسد. این افترا و دروغی که به خدا بسته بودند آنها را در دینشان مقرور ساخت فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه و وفیت کل نفس ما کسبت و لا يظلمون؟ پس چگونه خواهند بود هنگامی که آنها را برای روزی که شکی آن نیست جمع کنیم و به هر کس فراهم کرده به طور کامل دادی شود و به آنها ستم نخواهد شد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 بی کل خیر اینک علا کل شیء قدیر بگو بارلاها ای مالک ها به هر کس بخواهی حکومت میبخشی و از هر کس بخواهی حکومت را میگیری. هر کس را بخواهی عزت می دهی و هر که را بخواهی خار می کنی تمام خوبی ها بدست توست تا تو بر هر چیزی قادری. تولیج لیل فین نهار و تولیج نهار فین لیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغير حساب. در روز داخل میکنی. و روز را در شب و زنده را از مرده بیرون می و مرده را از زنده و به هر کس بخواهی بدون حساب روزی می بخشی لا المؤمنون الكافرين ومن یفعل ذلك فليس من الله فی شيء إلا إلا أن تتقو منهم تقاه و الله نفسه و الله المصير افراد با ایمان نباید به جای مؤمنان کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند و هر کس چونین کند هیچ رابطه ای با خدا ندارد و پیوند او به کلی از خدا گسسته می شود مگر اینکه از آنها بپرهیزید و به خاطر های مهمتری تقییه کنید خداوند شما را از نافرمانی خود برحضر می دارد و بازگشت شما به سوی خداست قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير بگو اگر آن چرا در سینه‌های شماست پنهان دارید یا آشکار کنید خداوند آن را می‌داند و نیز از آنچه در آسمانها و زمین است آگاه میباشد و خداوند بر هر چیزی توانااست یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بینها وبینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه و رؤوف بالعباد روزی که هر کس آنچه را از کار نیک انجام داده حاضر می‌بیند و آرزو می کند میان او و آنچه از اعمال بد انجام داده فاصله زمانی زیادی باشد خداوند شما را از نافرمانی خودش بر خزر می‌دارد خدا نسبت به همه بندگان مهربان است قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم بگو اگر خدا را دوست می‌دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد و خدا آمرزنده مهربان است قل اطیعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرین بگو از خدا و فرستاده او اطاعت کنید و اگر سرپیچی کنید خداوند کافران را دوست نمی دارد. ان الله اصطفى ادم و نوحا و ابراهیم و ال عمران على العالمين خداوند ادم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان بختریدا بعضها من بعض و آنها فرزندان و دودمانی بودند که از نظر پاکی و تقواب و فضیلت بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند و خداوند شنوا و داناست اذ قالت امراه عمران ربي انني نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انك انت السميع العليم به یاد آورید هنگامی را که همسر عمران گفت خداوندا آن را در رحم دارم برای تو نذر کردم که محرر باشد از من بپذیر که تو شنواه و دانائی فلما وضعتها قالت رب اینی وضعتها انفا والله اعلم بما وضعت والله اعلم بما وضعت و ليس الذکر و اینی سمیتها مریم و اینی اعیدها بك و ذریتها من الشیطان الرجیم ولی هنگامی که او را به دنیا آورد و او را دختر یافت گفت خداوندا: من او را دختر آوردم ولی خدا از آن که او به دنیا آورده بود آگاه بود و پسر همانند دختر نیست من او را مریم نام گذاردم و او و فرزندانش را از وسوسه های شیطان رانده شده در پناه تو قرار میدهم. فتقبلها ربها بقبول حسن و نباتا نبات حسنا و کفلها زكريا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 مریم را به طرز نیکویی پذیرفت و به طرز شایسته ای نحال وجود او را رویانید و پرورش داد و کفالت او را به زکریه سپرد هر زمان زکریه وارد مهراب او می شد مخصوصی در آنجا میدید. از او پرسید ای مریم این را از کجا آبرده ای؟ گفت این از سوی خداست. خداوند به هر کس بخواهد بیهس روزی میدهد. هنالک دعا زکریا ربه قال ربه بلملل دم کذریة طیبه. اینک سميع الدعاء. در آنجا بود که کزکریا با مشاهده آن همه شایستگی در مريم. پروردگار خیش را خواند و عرض کرد خداوندا از طرف خود فرزند پاکیزه اینیز نیز به من عطا فرما که تو دعا را می شنوی فنادت و وهو قائم صلی في المحراب ان الله ان الله یبشرك بیحیی مصدقا بكلمة من الله وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین و هنگامی که او در مهراب ایستاده مشغول نیایش بود فرشتگان او را صدا زدند که خدا تو را به یحیی بشارت میدهد کسی که کلمه خدا را تصدیق میکند و رهبر خواهد بود و از هوسهای سرکش بر کنار و پیامبری از صالحا است قال رب ان لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر و امراتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء او پروردگارا چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد در حالی که پیری به سراغ من آمده و همسرم نازاست؟ فرمود به گونه خداوند هر کاری را بخواهد انجام میدهد قال رب قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار زكريا ارشد پروردگارا نشانه ای برای من قرار ده گفت نشانه تو آن است که سه روز جز به اشاره و رمز با مردم سخن نخواهی گفت پروردگار خود را بسیار یاد کن و به هنگام صبح و شام او را تسبیح بگو و اذ قالت الملائكة یا مریم إن الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک, اصطفاک نساء العالمین و به یاد آورید هنگامی را که فرشتگان گفتند ای مریم خدا تو را برگزیده و پاک ساخته و بر تمام زنان جهان برتری داده است ای مریم به شکرانه این نعمت برای پروردگار خود ركوع كن وسجده بجا آور و با رکوع کنندگان رکوع کن ذالک من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم انهم يكفل مريم وما كنت لديهم و ما كنت لديهم اذ ای پیام بر این از خبرهای است که به تو وحی میکنیم و تو در آن هنگام که قلمهای خود را برای قرعه کشی به آب می افکندند تا کدام یک کفالت و سرپرستی مریم را احتدار شود و نیز به هنگامی که دانشمندان بنی اسرائیل برای کسب افتخار سرپرستی او با هم کشمکش داشتند حضور نداشتی و همه اینها از راه بعث به تو گفته شد ال قالت تو يا مريم ان الله يبشرك بكلمه من اسمه المسيح اسمه المسیح عیسی بن مریم و فی في الدنیا والآخرت و من المقربین به یاد آورید هنگامی را که فرشتگان گفتند ای مریم خداوند تو را به کلمه ای از طرف خودش بشارت میدهد که نامش مسیح ایسا پسر مریم است در حالی که در این جهان و جهان دیگر صاحب شخصیت خواهد بود و از مقربان الهی است و با مردم در گاهواره و در حالت کهولت و میان سال شدن سخن خواهد گفت و از شایستگان است قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضا أمرا فإنما يقول له كن فيكون مریم گفت پروردگارا چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد در حالی که انسانی با من تماس نگرفته است فرمود خداوند این گونه را بخواهد می آفریند هنگامی که چیزی را مقرر دارد فقط به آن می گوید موجود باش آن نیز فورا موجود می شود و یعلمه الكتاب والحکمت والتورات والانجیل و به او كتاب و دانش و تورات و انجيل من آمو و رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون, فيكون طيرا بإذن الله وأبرئو الأكمه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنین و او را بهعنوان رسول وفرستاده بسوی بنی اسرائیل قرار داده. که به آنها میگوید من نشانه از طرف پروردگار شما برایتان آورده ام من از گل چیزی به شکل پرنده میسازم سپس در آن میدمم و به فرمان خدا می میگردد و به اذن خدا کور مادرزاد و مبتلایان به برس پیسی را بهبودی میبخشم و مردگان را به اذن خدا زنده میکنم و از آنکه میخورید و در خانه های خود ذخیره میکنید به شما خبر میدهم مسلما در اینها نشانه ای برای شماست اگر ایمان داشته باشید و مصدیقا لما بین یدی من التورات ولی احل حرم و لا احلل لكم بعضا الذی حرم علیكم وجئتكم بایته من ربکم فاتقوا الله و اطيعو. و آنچه را پیش از من از تورات بوده تصدیق می کنم و آمدهم ام تا پاره از چیزهایی را که بر اثر ظلم و گناه بر شما حرام شده حلال کنم و نشانه ای از طرف پروردگار شما برایتان تان آورده ام. پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کن إن الله ربی وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم خداوند پروردگار من و پروردگار شماست او را بپرستید این است راه راست فلماسعسمنهم الكفرقال قال من انصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله انا ن بالله واشهد بان واشهد مسلمون ان قوم کیسا از آنان احساس کفر و مخالفت کرد گفت کیست که یاور من به سوی خدا برای تبلیغ آیین او گردد حواریان گفتند ما یاوران خداییم به خدا ایمان آوردیم و تو نیز گواه باش که ما اسلام آورده ایم ربنا آمننا بما انزلت و الرسول پروردگارا به آنکه نازل کرده ای ایمان آوردیم و از فرستاده تو پیروی نمودیم ما را در زمره گواهان بنویس و مکروا مکر الله والله خیر الماکرین و یهود و دشمنان مسیح برای نابودی او و آینش نقشه کشیدند و خداوند برای حفظ او و آینش چار جویی کرد و خداوند بهترین چار جویان است از قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک و مطهرک من الذین کفرون ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون في آداب هنگامی را که خدا به عیسی فرمود من تو را برمیگیرم و به سوی خود بالا میبرم و تو را از کسانی که کافر شدند پاک می سازم و کسانی را که از تو پیروی کردند تا روز رستاخیز برتر از کسانی که کافر شدند قرار می دهم. سپس بازگشت شما به سوی من است و در میان شما در آنچه اختلاف داشتید داوری میکنم. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ, وما لهم مِن نَاصِرِينَ اما آنها که کافر شدند در دنیا و آخرت آنان را مجازات دردناکی خواهم کرد و برای آنها یاورانی نیست و انما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين. اما آنها که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند خداوند پاداش آنان را به طور کامل خواهد داد و خداوند ستمکاران را دوست نمی دارد ذالک نتلوه عليك من اینها را که بر تو میخوانیم از نشانه های حقانیت توست و یادآوری حکیمانه است این مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون مسئ ایسا در نزد خدا همچون آدم است که او را از خاک آفرید و سپس به او فرمود موجود باش. او هم فورا موجود شد. الحق من من اینها حقیقتی است از جانب پروردگار تو بنابراین از تردید کنندگان مباش. حَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَنِسَاءَ أَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ ثم فنجعل لعنت الله هرگاه بعد از علم و دانشی که درباره مسیح به تو رسیده باز کسانی با تو به و ستیز برخیزند به آنها بگو بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم شما هم فرزندان خود را ما زنان خیش را دعوت نماییم. شما هم زنان خود را ما از نفوس خود دعوت کنیم شما هم از نفوس خود آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغ گویان قرار دهیم این هذا لهو القصص الحق و ما من اله الا الله و الله لهو العزیز العزيز الحكيم. همان سرگذشت واقعی مسیح هست و هیچ معبودی جز خداوند یگانه نیست و خداوند توانا و حکیم است. اِن الله اگر با این همه شواهد روشن باز هم از پذیرش حق روی گردانند بدان که طالب حق نیستند و خداوند از مفسد جویان آگاه است قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینكم ألا, ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء ولا يتخذ بعدنا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فن تولوا فقولو اشهدوا بنا مسلمون بگو ای اهل كتاب بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است که جز خداوند یگان را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم و بعضی از ما بعض دیگر را غیر از خدای یگانه به خدایی نپذیرد هرگاه از این دعوت سر باز زنند بگویید گواه باشید که ما مسلمانیم یا اهل الكتاب لمت حجون فی ابراهیم و ما انزلت. وما انزلت التورات والانجیل إلا من بعده أَفَلَا تعقلون ای اهل کتاب چرا درباره ابراهیم گفتگو و نزاع میکنید در حالی که تورات و انجیل بعد از او نازل شده است آیا اندیشه نمی کنید ها انتم ها اولائي حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما لیس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون شما کسانی هستید که درباره آنچه نسبت به آن آگاه بودید گفتگو و ستیز کردید چرا درباره آنچه آگاه نیستید گفتگو می کنید و خدا میداند و شما نمیدانید ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما ولیکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین ابراهیم نه یهودی بود و نه نسرانی بلکه موحد خالص و مسلمان بود و هرگز از مشرکان نبود این اول الناس ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبي والذین آمنوا والله ولي المؤمنین ترین مردم به ابراهیم آنها هستند که از او پیروی کردند این پیامبر و کسانی که به او ایمان آورده اند از همه سزاوارترند و خداوند ولی و سرپرست مؤمنان است و الدقائفت من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا و ما يضلون الا انفسهم و يشعرون. جمعی از اهل کتاب از یهود دوست داشتند و آرزو میکردند شما را گمراه کنند آنها گمراه نمی کنند مگر خودشان را و نمی فهمند یا <تصفيق> اهل الكتاب لیم تكفرون بی الله و انتم تشهدون ای اهل كتاب چرا به آیات خدا کافر میشوید در حالی که به درستی آن گواهی می یا اهل الكتاب لیم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و تعلمون ای اهل کتاب چرا حق را با باطل می آمیزی و مشتبه می کنید تا دیگران نفهمند و گمراه شوند و حقیقت را پوشیده می دارید در حالی که می وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذی انزل على الذین آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون و جمعی از اهل كتاب از یهود گفتند به آنچه بر مؤمنان نازل شده در آغاز روز ایمان بیاورید و در پایان روز کافر شوید و باز کردید. شاید آنها از آین خود باز کردند. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن هدى الله أي يؤتى أي يؤتى أحد مثلما أتيتم أو يحجكم عند ربكم قل ان الفضل بِيَدِ الله يُؤْتِيهِ من والله واسع علیم. و جز به کسی که از آیین شما پیروی می ایمان نیاورید بگو هدایت هدایت الهی است تصور نکنید به کسی همانند شما کتاب آسمانی داده می شود. یا اینکه میتوانند در پیشگاه پروردگارتان با شما بحث و گفتگو کنند بگو فضل و موهبت نبوت و عقل و منطق در انحصار کسی نیست بلکه به دست خداست و به هر کس بخواهد و شایسته بداند میدهد و خداوند واسع و آگاه است یادتوسم من یشاء والله ذو الفضل العظيم هر کس را بخواهد ویژه رحمت خود می کند و خداوند دارای مواهب عظیم است و من اهل الكتاب من ان تمنه بقن طری اوده و ومنهم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 و در میان اهل کتاب کسانی هستند که اگر ثروت زیادی به رسم امانت به آنها به سپاری، به تو باز میگردانند و کسانی هستند که اگر یک دینار هم به آنان به سپاری، به تو باز نمیگردانند. مگر تا زمانی که بالای سر آنها ایستاده و بر آنها مسلط باشی این به خاطر آن است که میگویند. ما در برابر امیین مسئول نیستیم و بر خدا دروغ می بندند در حالی که می دانند این سخن دروغ است. بلا من اوفا بعهده و اتقا الله يحب آری کسی که به پیمان خود وفا کند و پرهیزگاری پیش نماید خدا او را دوست می دارد. زیرا خداوند پرهیزگاران را دوست دارد. إن الذين يشترون بعهد الله و إيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود به نام مقدس او را به بهای ناچیزی میفروشند آنها بهره ای در آخرت نخواهند داشت <قصرت> و خداوند با آنها سخن نمیگوید و به آنان در قیامت نمی نگرد و آنها را از گناه پاک نمی سازد و عذاب دردناکی برای آنهاست. است و این منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه, لتحسبوه من الكتاب و ما هو من الكتاب و و هو من, هو من عند الله و ما هو الله و یقولون و یقولون علالله الكذب و هم يعلمون در میان آنها یهود کسانی هستند که به هنگام تلاوت کتاب خدا زبان خود را چنان میگردانند که گمان کنید آنچه را میخانند از کتاب خداست. در حالی که از کتاب خدا نیست. و با سرعت میگویند آن از طرف خداست. با اینکه از طرف خدا نیست. و به خدا دروغ میبندند. در حالی که میدانند. ما کان لبشر این یوتیه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم یقول ثم يقول <تصفيق> ان الناس يكونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم وبما كنتم تدرسون ترى هيج بشري سزاوار نیست که خداوند کتاب آسمانی و حکم و نبوت به او دهد سپس او به مردم بگوید غیر از خدا مرا پرستش کنید بلکه سزاوار مقام او این است که بگوید مردمی الهی باشید آنگونه که کتاب خدا را می آموختید و درس می خاندید. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبين اربابا أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون منأين به شما دستور دهد که فرشتگان و پیامبران را پروردگار خود انتخاب کنید آیا شما را پس از آنکه مسلمان شدید به کفر دعوت می کند اللهم لما آتيتكم من كتاب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 و به خاطر بیاورید هنگامی را که خداوند از پیامبران و پیروان آنها پیمان معکد گرفت که هرگاه کتاب و دانش به شما دادم سپس پیامبری به سوی شما آمد که آنچه را با شماست تصدیق میکند به او ایمان بیاورید و او را یاری کنید سپس خداوند به آنها گفت آیا به این موضوع اقرار دارید و بر آن پیمان مؤکد بستید؟ گفتند: آری، اقرار داریم. خداوند به آنها گفت: پس گواه باشید و من نیز با شما از گواهانم. فمن تولى بعد ذلك فأولئک هم الفاسقون پس کسی که بعد از این پیمان محکم روی گرداند فاسق است افغیر دین الله یبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا و کرها و آیا آنها غیر از آین خدا می آین او همین اسلام است و تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند از روی اختیار یا از روی اجبار در برابر فرمان او تسلیمند و همه به سوی او بازگردانده میشوند قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل ابراهیم وما انزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق احد منهم و له بگو به خدا ایمان آوردیم و همچنین به آنچه بر ما و بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل گردیده و آنچه به موسی و عیسی و دیگر پیامبران از طرف پروردگارشان داده شده است ما در میان هیچ یک از آنان فردی نیگذاریم و در برابر فرمان او تسلیم هستیم. و منی به تغییر الاسلام دین فلی قبل منه و هو في الآخره و هو في من الخاسرين. و هر کس جز اسلام آینی برای خود انتخاب کند از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از زیان است است. گئِفَيَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَيْدُ وَشَيْدُ أَنْرَوَسُوا لَحْقُ وَجَاتَهُمُ الْبَيْنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ چگونه خداوند جمعیتی را هدایت می کند که بعد از ایمان و گواهی به حقانیت رسول و آمدن نشانه های روشن برای آنها کافر شدند و خدا جمعیت ستمکاران را هدایت نخواهد کرد اولئیک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله والملائکه ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين شيفر آنها این است که لعن و ترد خداوند و فرشتگان و مردم همگی بر آنهاست خالدين فیها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون هم باره در این لعن و ترد و نفرین میمانند مجازاتشان تخفیف نمی‌یابد و به آنها مهلت داده نمی‌شم الا الذين تابوا <تصفيق> من مگر کسانی که پس از آن توبه کنند و اصلاح نمایند زیرا خداوند آمور زنده و بخشنده است الذين كفروا بعد ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن کسانی که پس از ایمان کافر شدند و سپس بر کف خود افزودند هیچگاه توبه آنان قبول نمیشود و آنها گمراهان واقعی‌اند ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به لهم عذاب وما کسانی که کافر شدند و در حال کفر از دنیا رفتند اگرچه روی زمین پر از طلا باشد و آن را به عنوان فدیه بپردازند هرگز از هیچ یک آنها قبول نخواهد شد و برای آنان مجازات دردناک است و یاورانی ندارند لن تنال البر وحتى تنفقوا مما تحبون وما تدفقوا من شيء فان الله به عليم هرگز به حقیقت نیکوکاری نمی رسید مگر اینکه از آنکه دوست می دارید در راه خدا انفاق کنید و آنچه انفاق می کنید خداوند از آن آگاه است. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم على نفسه من قبل أن تنزل التوراة والفاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم همه قضاهای پاک بر بنی اسرائیل حلال بود جز آنچه اسرائیل یعقوب پیش از نزول تورات بر خود تحریم کرده بود بگو اگر راست میگویید تورات را بیاورید و بخوانی فَمَن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بنابر آنها که بعد از این به خدا دروغ میبندند ستمگرند قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفًا وما كان من المشركين بکوم خدا راست گفته و اینها در آین پاک ابراهیم نبوده است بنابراین از آین ابراهیم پیروی کنید که به حق گرایش داشت و از مشرکان نبود این اول بیت وضع للناس للذیب بکت مبارکا مبارکا وهدن للعالمین نخستین خانه ای که برای مردم و نیایش خداوند قرار داده شد همان است که در سرزمین مکه است که پر برکت و مایه هدایت جهانیان است فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من کان آمنا ولله على الناس حج البیت من استطاع اليه سبيلا و ومن كفر فإن الله غنی عن العالمين در آن های روشن از جمله مقام ابراهیم است و هر کس داخل آن خانه خدا شود در امان خواهد بود و برای خدا بر مردم است که آهنگ خانه او کنند آنها که توانایی رفتن به سوی آن دارند و هر کس کفر ورزد و حج را ترک کند به خود زیان رسانده خداوند از همه جهانیان بینیاز است بگو ای اهل کتاب چرا به آیات خدا کفر میبرزید و خدا گواه است بر اعمالی که انجام میدهید قل یا اهل الكتاب لمتصدون عن سبیل الله من آمن من آمن تبغونها عوجا و شهدا الله بغافل تعملون. بگو ای اهل کتاب چرا افرادی را که ایمان آوردهاند از راه خدا باز میدارید و میخواهید این راه را کجی سازید در حالی که شما به درستی این راه گواه هستید و خداوند از آنکه انجام می دهید آفل نیست؟ يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا ان من الذين اوتوا الكتاب يردوكم يردوكم بعد ايمانكم كافرين اي خساني كايمان آورده عيد اگر از گروهی از اهل کتاب اطاعت کنید شما را پس از ایمان به کفر باز میگردانم. و کیف تکفرون و انتم تتلا عليكم آیات الله و رسوله و یعتصم بالله فقد هدیه الى صراط مستقیم و چگونه ممکن است شما کافر شوید با اینکه آيات آیات خدا بر شما خانده میشود؟ و بر او در میان شماست و هر کس به خدا تمسک جوید به راهی راست هدایت شده است یا ای آنهالذین آمنوا تتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ای کسانی که ایمان آورده اید. ان گونه که حق تقوا و پرهیزگاری است از خدا بپرهیزید و از دنیا نروید مگر اینکه مسلمان باشید و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا و ذکروا نعمه الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بين قلوبکم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 به ریسمان خدا، قرآن و اسلام و هر گونه وسیله وحدت چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت بزرگ خدا را بر خود به دارید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان دلهای شما الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت او برادر شدید و شما بر لب حفره ای از آتش بودید، خدا شما را از آن نجات داد، این چونین خداوند آیات خود را برای شما آشکار می ساسد. شاید پذیرای هدایت شد. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرُ و اولائك هم المفلحون باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند و آنها همان رستگارانند و لا تكونوا كالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و اولئی لهم عذاب عظیم و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختلاف کردند آن هم پس از آن که نشانه های روشن پروردگار به آنان رسید و آنها عذاب عظیمی دارند یوم تبیاد دوجوه و وجوه فَأَمَّا الَّذِينَ اسودت وجوههم أَكَفَرْتُمْ بعد ایمَانِكُمْ فذوقوا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ آن عذاب عظیم روزی خواهد بود که چهره های سفید و چهره های سیاه میگردد اما آنها که صورتهایشان سیاه شده به آنها گفته می شود آیا بعد از ایمان کافر شدید پس بچشید عذاب را به سبب آنچه کفر می و ان الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله ففي رحمه هم فيها و اما آنها که چهره هایشان سفید شده در رحمت خداوند خواهند بود و جاودانه در آن میماند. تلک آیات الله عليك بالحق و الله اینها آیات خداست که به حق بر تو میخانیم و خداوند هیچگاه ستمی برای احدی از جهانیان نمیخواهد ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور چگونه ممکن است خدا ستم کند در حالی که آنچه در ها و آنچه در زمین است مال اوست و همه کارها به سوی او بازگردانده شود کنتم خير أمبت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن, المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون شما بهترین امتی بودید که به سود انسانها آفریده شدند این که اینکه امر به معروف و نحی از مونکر می‌کنید و به خدا ایمان دارید و اگر اهل کتاب ایمان آورند برای آنها بهتر است ولی تنها عدده کمی از آنها با ایمانند و بیشتر آنها فاسقند لن یضروکم الا اذا و این یقاتلوکم الادبار ثم لا آنها اهل کتاب مخصوصا یهود هرگز نمی توانند به شما زیان برسانند جز آزارهای مختصر و اگر با شما پیکار کنند به شما پشت خواهند کرد و شکست میخورند. سپس کسی آنها را یاری نمی کند دربت علیه اینما ثقفو الا بحبل من الله و من الناس وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون, ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون هر جا یافت شوند، مهر زلت بر آنان خورده است مگر با ارتباط به خدا و با ارتباط به مردم و به خشم خدا گرفتار شدهاند و مهر بیچارگی بر آنها زده شده چرا که آنها به آیات خدا کفر بردیدند و پیام بران را به ناحق می‌کشتند اینها به خاطر آن است که گناه کردند و تجاوز می نمود. لیس سواء من اهل الكتاب امت قائمه یتلون یتلون آیات الله آنان الليل وهم يسجدون. آنها همه یکسان نیستند. از اهل کتاب جمعیتی هستند. که به حق و ایمان قیاب میکنند و پیوسته در اوقات شب آیات خدا را میخوانند در حالی که سجده می یؤمنون بالله والیوم الاخر و بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون و یسارعون فی الخیرات و من الصالحین به خدا و روز واپسین ایمان میآورند امر به معروف و نهی از منکر می میکنند و در انجام کارهای نیک پیشی میگیرند و آنها از صالحانند و ما من خیر فلن والله علیم بالمتقین و آنچه از اعمال نیک انجام دهند هرگز کفران نخواهد شد و خدا از پرهیزگاران آگاه است این الذین کفرولا تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا و أصحاب اصحاب النارهم فيها خالدون کسانی که کافر شدند هرگز نمی در پناه اموال و فرزندانشان از مجازات خدا در امان بمانند آنها اصحاب دوزخند و جاودان در آن خواهند ماند مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنیا كمثل ريح. كمثل مثل فيها فی ها صرون اصابت عرث قوم ظلمون انفسهم فا وما ظلمهم الله ولكن انفسهم یظلمون آنچه آنها در این زندگی پست دنیاوی انفاق می کنند. همانند باد سوزانیست که به زراعت قومی که خود ستم کرده ببزد و آن را نابود سازد خدا به آنها ستم نکرده بلکه آنها خودشان بخیشتن ستم میکنند یا لا تتخذوا من لا خبالا لا يئلونكم خباله والدو ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون اي حساني چه ایمان آورده اید محرم اسراری از غیر خود انتخاب نکنید. آنها از هر گونه شر و فسادی در شما کوتاهی نمیکنند. آنها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشید نشانه های دشمنی از دهان و کلامشان آشکار شده و آنچه در دلهایشان پنهان می دارند از آن مهمتر است ما آیات را برای شما بیان کردیم اگر ان ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب, كله وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبوا عليكم وایده خلاوم عب عليهقنا می من الغائ قم ب غیقیم این الله علیمون بذد صور شما کسانی هستید كه آنها را دوست میدارید اما آنها شما را دوست ندارند در حالی که شما به همه کتاب های آسمانی ایمان دارید و آنها، به کتاب آسمانی شما ایمان ندارند هنگامی که شما را ملاقات می کنند، به دروغ می گویند، ایمان آورده ایم. اما هنگامی که تنها می شوند، از شدت خشم بر شما سر انگشتان خود را به دندان میگزند. بگو با همین خشمی که دارید بمیرید خدا از اسرار درون سینه ها آگاه است این تمسک حسنتون تسوم و این توصب خم سع بها و این وتتقوا لا ت قله یا برک این الله بما عملون م اگر نیکی به شما برسد آنها را ناراحت میکند. و اگر حادثه ناگواری برای شما رخ دهد، خوشحال میشوند. اما اگر در برابرشان استقامت و پرهیزگاری پیش کنید، نقشههای های خائنانه آنان به شما زیانی نمیرساند. خداوند به آنچه انجام میدهند اهانت دارد. و ایز غدوت من اهلی که تبویع المؤمنین مقاعد للقتال والله سمیع علیم. و بیاد آور زمانی را که صبح گاهان از میان خانواده خود جهت انتخاب اردوگاه جنگ برای مؤمنان بیرون رفتی و خداوند شنوا و داناست اِذْ هَمَّ الطَّاعِ فَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ و نیز بیاد آور زمانی را که دو طایفه از شما تصمیم گرفتند سستی نشان دهند و از وسط راه باز بازگردند و خداوند پشتیبان آنها بود و به آنها کمک کرد که از این فکر بازگردند و افراد با ایمان باید تنها بر خدا توکل کنند خداوند شما را در بدر یاری کرد و بر دشمنان خطرناک پیروز ساخت در حالی که شما نسبت به آنها ناتوان بودید پس از خدا بپرهیزید تا شکر نعمت او را به جا آورده باشید ازدخول للمؤمنین علی یکفیکم ان یمدکم ربكم بی آلاف به ثلاثت آلاف من هنگام که تو به مؤمنان می گفتی آیا کافی نیست که پروردگارتان شما را به سه هزار نفر از فرشتگان که از آسمان فرود می آیند یاری کند؟ بله این تصبروا وتتقوا تتقو و من فورهم هذا یمددکم ربكم یمددکم ربکم بی آلاف من الملائکت مسوومین آری امروز هم اگر استقامت و تقوا پیشه کنید و دشمن به همین زودی به سراغ شما بیاید خداوند شما را به 5000 نفر از فرشتگان که هایی با خود دارند مدد خواهد داد و ما الله الا بشرا لكم ولطما ان قلوبكم به ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم ولی اینها را خداوند فقط بشارت و برای اطمینان خاطر شما قرار داده وگرنه پیروزی تنها از جانب خداوند توانای حکیم است لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ این وعده را که خدا به شما داده برای این است که قسمتی از پیکر لشکر کافران را قطع کند یا آنها را با ذلت برگرداند تا معیوس و ناامید بازگردند لیس من الامر شیعون او یتوب عليهم او یعذبهم فإنهم, فإنهم, فإنهم ظالمون هیچ گونه اختیاری درباره عفو کافران یا مؤمنان فراری از جنگ برای تو نیست مگر اینکه خدا بخواهد آنها را ببخشد یا مجازات کند زیرا آنها ستمگرند. ولله ما و ما فی یغفر لمن یشاء و من يشاء والله غفور الرحيم. و آن در آسمان ها و زمین است ازان خدا خداست هر کس را بخواهد و شایسته بداند میبخشد و هر کس را بخواهد مجازات می کند و خداوند آمور زنده مهربان است یا ایوها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون ای کسانی که ایمان آورده اید ربا و سود پول را چند برابر نخورید از خدا بپرهیزید تا رستگار شوید و اتقن نارالتی اعدت للكافرین و از آتشی بپرهیزید که برای کافران آماده شده است و اطیع الله و رسول لعلكم ترحمون و خدا و پیام بر را اطاعت کنید تا مشمول رحمت شوید. و سریع الى مغفرت من ربكم و عرضها السماوات عرضها السماوات والارض عدت للمتقین و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن آسمان و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است الذيينَ يوم في قُونَ في السرواء والبراءِ والكظمِين الغيم والكاضمِين الغضَ والعَافين عن النَّ واللههُ يُحب المُحسنين همان حاک در توانگری و تنگ دستی انفاق میکنند و خشم خود را فرو میبرند و از خطای مردم در میگذرند و خدا نیکو کاران را دوست دارد والذین ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا, ولم يصروا على ما فعلوا و هم يعلمون و آنها که وقتی مرتکب عمل زشتی شوند یا به خود ستم کنند به یاد خدا می افتند. و برای گناهان خود طلب آمرزش میکنند و کیست جز خدا که گناهان را ببخشد و بر گناه اصرار نمیورزند با اینکه که میدونند که جزاؤهم مغفرت من ربهم و جنات و جنت تجری من تحتیل انهار خالدین فیها و نعم اجر العاملین آنها پاداششان آمرزش پروردگار و است که از زیر درختانش نهرها است جابدان در آن میمانند چه نیکوست پاداش اهل عمل قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ پیش از شما سنت‌هایی وجود داشت پس در روی زمین گردش کنید و ببینید سرانجام تکذیب کنندگان آیات خدا چگونه بود هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقن إین بیانی است برای عموم مردم و هدایت و اندرزی است برای پرهیزگاران ولا تهنوا ولا تحزنوا ونتم الأعلون نكنتممننو سوست نشوید وغمگین نگردید و شما برترید اگر ایمان داشته باشید إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلك الأيام نداولها بین الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. اگر در میدان اهد به شما جراحتی رسید و ضربه ایوارد وارد شد به آن جمعیت نیز در میدان بدر جراحتی همانند آن وارد گردید و ما این روزهای پیروزی و شکست را در میان مردم می تا خدا افرادی را که ایمان آورده اند بداند و شناخته شوند و خداوند از میان شما شاهدانی بگیرد و خدا ظالمان را دوست نمیدارد. ولی الله الذين آمنوا و يمحق الكافرين و تا خداوند افراد با ایمان را خالص گرداند و ورزیده شوند و کافران را به تدریج نابود سازد الحاسبات ام ان تدخلوا الجنه ولما ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرین آیا چنین پنداشید که تنها با ادعای ایمان وارد بهشت خواهید شد در حالی که خداوند هنوز مجاهدان از شما و صابران را مشخص نساخته است ولقد لقد کنتم تمننون الموت من قبل ان تلقوه فقد رایتم فقد رایتموه وانتم و شما مرگ و شهادت در راه خدا را پیش از آنکه با آن رو شوید. آرزو می کردید سپس آن را با چشم خود دیدید در حالی که به آن نگاه میکردید کردید و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسول افا مات او قتلن قلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على فلن يضر الله شيئا و الله محمد فقط فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند آیا اگر او بمیرد و یا کشته شود شما به عقب برمیگردید؟ و هر کس به عقب بازگردد هرگز به خدا زرری نمی‌زند و خداوند به زودی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 جز به فرمان خدا نمی میرد است تعیین شده هر کس پاداش دنیا را بخواهد چیزی از آن به او خواهیم داد و هر کس پاداش آخرت را بخواهد از آن به او میدهیم و به زودی سپاس گذاران را پاداش خواهیم داد وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وذا ضعف وما, وما استكانوا والله يحب الصابرين چه بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه آنان جنگ کردند آنها هیچگاه در برابر آنچه در راه خدا به آنان می رسید، سست و ناتوان نشدند و خداوند استقامت کنندگان را دوست دارد و كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اصرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و علی القوم الكافرین سخنشان تنها این بود که پروردگارا گناهان ما را ببخش و از توند رویهای ما در کارها چشم پوشی کن قدمهای ما را استوار بدار و ما را بر جمعیت کافران پیروز کردند سدم الله ثواب دنیا وحسن ثواب اخ والله يحب المحسنين. از این رو خداوند پاداش این جهان و پاداش نیک آن جهان را به آنها داد و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد یا <صحة> ایوها الذین آمنوا این تطیعوا الذین كفروا یا ردوکم یا ردوکم على اعقابکم فتنقلبو خاسرین ای کسانی که ایمان آورده اید اگر از کسانی که کافر شده اند اطاعت کنید شما را به گزشته هایتان باز میگردانند. و سرانجام زیانکار خواهید شد الله وهو آنها تکیه شما نیستند بلکه ولی و سرپرست شما خداست و او بهترین یاوران است سنلقی فی قلوب الذین کفر رعب بما اشراکو بالله بما اشراکو بالله ما لم ينزل به سلطانا و مأواهم النار و بئس مثو الظالمین در دلهای کافران به خاطر اینکه بدون دلیل چیزهایی را برای خدا هم تا قرار دادند رعب و ترس می افکنیم و جایگاه آنها آتش است و چه بد جایگاهیست جایگاه ستمکاران و لقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم بی اذنه حتی اذا فشلتم و تنازعتم في الامر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم, وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنین خداوند وعده خود را به شما درباره پیروزی بردشمندر اهد تحقق بخشید در آن هنگام که در آغاز جنگ دشمنان را به فرمان او به قتل می رساندید و این پیروزی ادامه داشت تا اینکه سست شدید و بر سر رها کردن سنگرها در کار خود به نظاع پرداختید و بعد از آن که آنچه را دوست میداشتید به شما نشان داد نافرمانی کردید بعضی از شما خواهان دنیا بودند و بعضی خواهان آخرت سپس خداوند شما را از آنان منصرف ساخت تا شما را آزمایش کند و او شما را بخشید و خداوند نسبت به مؤمنان فضل و بخشش دارد اذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم, فأثابكم غمّا بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم و الله خبیر بی ما به بیاورید هنگامی را که از کوه بالا می رفتید به عقب ماندگان نگاه نمی کردید و پیامبر از پشت سر شما را صدا می زد. سپس اندوه ها را یکی پس از دیگری به شما جزا داد این به خاطر آن بود که دیگر برای از دست رفتن قنایم جنگی غمگین نشوید و نه به خاطر مسیبتهایی که بر شما وارد می و خداوند از آنچه انجام می دهید آگاه است ثم انزل علیکم من بعد الغمم نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليه بيت لي اللهم ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور سپس به دنبال این غم و اندوه آرامشی بر شما فرستاد این آرامش به صورت خواب سبوکی بود که در شب بعد از حادثه احد گروهی از شما را فرا گرفت اما گروه دیگری در فکر جان خیش بودند و خواب به چشمانشان نرفت. آنها گمانهای نادرستی همچون گمانهای دوران جاهلیت درباره خدا داشتند و می گفتند آیا چیزی از پیروزی نصیب ما می‌شود؟ بگو همه کارها و پیروزیها به دست خداست. آنها در دل خود چیزی را پنهان می‌دارند که برای تو آشکار نمی می‌گویند اگر ما سهمی از پیروزی داشتیم در اینجا کشته نمی شدیم. بگو اگر هم در خانه های خود بودید آنهایی که کشته شدن بر آنها مقرر شده بود قصعا به سوی آرامگاه های خود بیرون می آمدند و آنها را به قتل میرساندند و اینها برای این است که خداوند آنچه در سینه هایتان پنهان دارید بیازماید و آنچه را در دلهای شما از ایمان است خالص گرداند و خداوند از آنچه در درون سینه هاست با خبر است این الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم کسانی از شما که در روز روبرو شدن دو جمعیت با یک دیگر در جنگ اهد فرار کردند شیطان آنها را بر اثر بعضی از گناهانی که مرتکب شده بودند به لغزش انداخت و خداوند آنها را بخشید خداوند آمور زنده و بردبار است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 لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل الله ذلك حسرة فی قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصیر ای کسانی که ایمان آورده اید همانند کافران نباشید که چون برادرانشان به مسافرت میروند. یا در جنگ شرکت میکنند، میگویند، اگر آنها نزد ما بودند نمیموردند و کشته نمیشدند، شما از این گونه سخنان نگویید تا خدا این حسرت را بر دل آنها کافران بگذارد. خداوند زنده میکند و میمیراند و خدا به آنچه انجام میدهید. بیناست. و لئن قتلتم فی سبیل الله اومدتم لمغفرت من الله و خیر و رحمت خیر اگر هم در راه خدا کشته شوید یا بمیرید زیان نکرده اید زیرا آمرزش و رحمت خدا از تمام آنچه آنها در طول عمر خود جمع آوری میکنند بهتر است و انمتم أو قتلتم لا الله تحشرون و اگر بمیرید یا کشته شوید به سوی خدا محشور میشوید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفض من حولك فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله یحب المتوكلین به برکت رحمت الهی در برابر آنان نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگ دل بودی از اطراف تو پراکنده میشدند آنها را ببخش و برای آنها آموزش بطلب و در کارها با آنان مشورت کن اما هنگامی که تصمیم گرفتی قاطع باش و بر خدا توکل کن زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد این انصرکم الله فلا غالب لكم وإن يأخذكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون اگر خداوند شما را یاری کند هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد و اگر دست از یاری شما بردارد کیست که بعد از او شما را یاری کند و مؤمنان تنها بر خداوند باید توکل کنند وما ما کان لنبین يغل ومن و من يأتي بما غل یوم القیامت ثم توفا ثم توفا كل نفس ما کسبت و هم لا يظلمون گمان کردید ممکن است پیامبر به شما خیانت کند؟ در حالی که ممکن نیست هیچ پیام بری خیانت کند. و هر کس خیانت کند روز رستاخیز آنچه را در آن خیانت کرده با خود به صحنه محشر میآورد. سپس به هر کس آنچه را فراهم کرده و انجام داده است به طور کامل داده می شود. و به همین دلیل به آنها ستم نخواهد شد. فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن ضَلَّ سُوءَ قَطٍّ مِنَ اللَّهِ جهنم جَهَنَّمُ وَبِئْسَ آیا کسی که از رضای خدا پیروی کرده همانند کسی است که به خشم و غضب خدا بازگشته و جایگاه او جهنم و پایان کار او بسیار بد است. هم درجات عند الله والله بما يعملون هر یک از آنان درجه و مقامی در پیشگاه خدا دارند و خداوند به آنچه انجام میدهند بیناست. لقد من الله على المؤمنين إذبعث فيهم رسولا من آفوسهم يتلوا عليهم آياته يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا مِنْ من قبل لفي ضلال مبين بر مؤمنان منت نهاد هنگامی که در میان آنها پیام بری از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنها بیخواند و آنها را پاک کنند و کتاب و حکمت بیاموزد و البته پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند اولا لما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير آیا انغامي که مصیبتی در میدان جنگ احد به شما رسید در حالی که دو برابر آن را در میدان جنگ بدر بر دشمن وارد ساخته بودید، گفتید این مصیبت از کجاست؟ بگو از ناحیه خود شماست که در میدان جنگ اهد با دستور پیام بر مخالفت کردید، خداوند بر هر چیزی قادر است، و ما اصابکم یوم التقل جمعان فبی الله و لیعلم المؤمنین و آنچه در روز اهد در روزی که دو دسته مؤمنان و کافران با هم روبرو شدند به شما رسید به فرمان خدا و طبق سنت الهی بود و برای این بود که مؤمنان را مشخص کند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 و الله اعلم بما یکتمون و نیز برای این بود که منافقان شناخته شوند آنهایی که به ایشان گفته شد بیایید در راه خدا نبرد کنید یا حد اقل از حریم خود دفاع نمایید گفتند اگر میدانستیم جنگی روی خواهد داد از شما پیروی می کردیم اما میدانیم جنگی نمی شود آنها در آن هنگام به کفر نزدیکتر بودند تا به ایمان به زبان خود چیزی میگویند که در دلهایشان نیست و خداوند به آنچه كتمان میکنند آگاهتر است الذین قالوا لخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلو قل فدرعو عن الموت آنها هستند که به برادران خود در حالی که از حمایت آنها دست کشیده بودند گفتند اگر آنها از ما پیروی می کردند کشته نمی شدند. بگو مگر شما می توانید مرگ افراد را پیش بینی کنید پس مرگ را از خودتان دور سازید اگر راست میگویید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون ای پیامبر هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند مردگانند بلکه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده میشوند فریحین بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم الا الا خوف عليهم ولا هم يحزنون آنها به خاطر نعمت‌های فراوانی که خداوند از فضل خود به ایشان بخشیده است خوشحالند و به خاطر کسانی که هنوز به آنها ملحق نشده اند خوشبختند که نه ترسی بر آنهاست و نه غمی خواهند داشت یستبشیرون من الله و, فضل و أن الله وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. باز نعمة خدا و فضل او نسبت به خودشان نیز مسرورند و می بینند که خداوند پاداش مؤمنان را زایع نمی کند. الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ مِنْهُمْ أَجْرٌ عظيم. آنها که دعوت خدا و پیام را پس از آن همه جراحاتی که به ایشان رسید اجابت کردند برای کسانی از آنها که نیکی کردند و تقوا پیش گرفتند پاداش بزرگی. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم الناس قد جمعوا لكم فزادهم ايمانا وقالوا, وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ها <تصفيق> بودند که بعضی از مردم به آنان گفتند مردم برای حمله به شما اجتماع کرده اند از آنها بترسید اما این سخن بر ایمانشان افزود و گفتند خدا ما را کافی است با او بهترین حامی ماست. فان قل ابو من الله وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم. به همین جهت آنها از این میدان با نعمت و فضل پروردگار بازگشتند در حالی که هیچ ناراحتی به آنان نرسید و از رضای خدا پیروی کردند و خداوند دارای فضل و بخشش بزرگی است اینما ذالکوم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم, فلا تخافوهم و خافون وخافونی کنتم مؤمنین این فقط شیطان است که پیروان خود را میترساند از آنها نترسید و از من بترسید اگر ایمان دارید ولا يحزن الذين یسارعون في الكفر إنهم لن الله شیئا يريد الله ألا یجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظیم کسانی که در راه کفر شتاب می‌کنند تو را غمگین نسازند به یقین آنها هرگز زیانی به خداوند نمی‌رسانند به علاوه خدا می‌خواهد آنها را به حال خودشان واگذارد و در نتیجه بهره‌ای برای آنها در آخرت قرار ندهد و برای آنها مجازات بزرگی اِنَّ الَّذِينَ شْتَرَوُ الْخُفْرَ <تصفح> بِالْایمَانِ لَنْ يَضُرُوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ آرهی کسانی که ایمان را دادند و کفر را خریداری کردند هرگز به خدا زیانی نمیرسانند و برای آنها مجازات دردناکیست ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين آنها که کافر شدند و راه تقیان پیش گرفتند تصور نکنند اگر به آنان مهلت میدهیم به است ما به آنان مهلت می دهیم فقط برای اینکه بر گناهان خود بیفزایند و برای آنها عذاب خار کنند ای آماده شده است ما الله المؤمنین علی ما انتم علیه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 مؤمنان را به همان گونه که شما هستید واگذارد مگر آنکه ناپاک را از پاک جدا سازد و نیز چنین نبود که خداوند شما را از اسرار غیب آگاه کند ولی خداوند از میان رسولان خود هر کس را بخواهد برمیگزیند پس به خدا و رسولان او ایمان بیاورید و اگر ایمان بیاورید و تقوا پیش کنید پاداش بزرگی برای شماست ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله میراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبیر کسانی که بخل میورزند و را خدا از فضل خیش به آنان داده انفاق نمی گمان نکنند این کار به سود آنهاست بلکه برای آنها شر است به زودی در روز قیامت آنچه را نسبت به آن بخل ورزیدند همانند توقی به گردنشان میافكنند و میراث آسمانها و زمین از آن خداست و خداوند از آنچه انجام میدهید آگاه است لقد سمع الله قول الذین قالوا ان الله فقیر ونحن غنیا سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ونقول ذوقوا عذاب الحريق خداوند سخن آنها را که گفتند خدا فقیر است و ما به شنید به زودی آن را گفتند خواهیم نوشت و همچنین به ناحق کشتن پیامبران را مینویسیم و به آنها میگوییم بچشید عذاب سوزان را در برابر کارها ذالک این به خاطر چیزی است که دستهای شما از پیش فرستاده و نتیجه کار شماست. و به خاطر آنست که خداوند به بندگان خود ستم نمی کند الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى حَتَّى يَعْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارِ قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم قل قد جاءكم رسل من قبلي وبالذي قلتم فلما قتلتموهم فلما قتلتموهم كنتم صادقين همان کسانی هستند که گفتند خداوند از ما پیمان گرفته که به هیچ پیامبری ایمان نیاوریم تا این معجزه را انجام دهد یک قربانی بیاورد که آتش سائقه آسمانی آن را بخورد بگو پیامبرانی پیش از من برای شما آمدند و دلایل روشن و آنچه را گفتید آوردند پس چرا آنها را به قتل رساندید اگر راست می گویید فَإِنْ كَذَّبُواْ كَفَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ كَجَاؤُواْ جَاؤُواْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ پس اگر این بحان جویان تو را تکذیب کنند چیز تازه ای نیست. رسولان پیش از تو نیز شدند پیامبرانی که دلایل آشکار و نوشته های متین و محکم و کتاب روشنی بخش آورده بودند كل نفس ذائقة الموت و انما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن این دار و ادخل الجندت فقد فاز و مل حیات الدنیا الا متاع هر کسی مرگ را می و شما پاداش خود را به طور کامل در روز قیامت خواهید گرفت آنها که از آتش دوزخ دور شده به بهشت وارد شوند نجات یافته و رستگار شده اند. و زندگی دنیا چیزی جز سرمایه فرید نیست لتبلون فی اموالکم و انفسکم و لتسمعون ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا ومن الذين اشركوا اذًا كثيرًا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور بيقين همه شما در اموال و جانهای خود آزمایش می شوید. و از کسانی که پیش از شما به آنها کتاب آسمانی داده شده و همچنین از مشرکان سخنان آزاردهنده فراوان خواهید کنید. و اگر استقامت کنید و تقوا پیش سازید این از کارهای مهم و قابل اطمینان است، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ وَبِخَاتِرْ بِاوَرِيدْ هِمْغَامِ رَا كِ خُدَا از کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده شده پیمان گرفت که حتما آن را برای مردم آشکار سازید و کتمان نکنید ولی آنها آن را پشت سر کندند و به بهای کمی فروختند و چه بد متاعی می کنند. لا تحسبن و يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم, فلا تحسبنهم بمفازت من العذاب ولهم عذاب علیم گمان مبر آنها که از اعمال زشت خود خوشحال میشوند و دوست دارند در برابر کار نیکی که انجام نداده اند مورد ستایش قرار گیرند از عذاب الهی برکنارند بلکه برای آنها عذاب دردناکیست است و ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير حکومت آسمان ها و زمین از خداست خداست و خدا بر همه چیز تواناست نفی در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و رفت شب و روز نشانه روشنی برای خردمندان است.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 سبحانک همانها که خدا را در حال ایستاده و نشسته و آنگاه که بر پهلو خابیده اند یاد می‌کنند و در اسرار آفرینش آسمانها و زمین می‌اندیشند و می‌گویند بار اینها را بیهوده نیا ای منزهی تو مارا از عذاب آتش نگاه دار ربنا اینک من تدخل نار فقد اخزیته و مال الظالمین من انصار پروردگارا هر تو به خاطر اعمالش به آتش افکنی او را خار و رسوا ساخته ای. وبرای برای ستمگر هیچ یاوری نیست. ربنا، ایننا سمعنا منادی ينادي منادی، أن آمنوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و عنا سیعاتنا وتوفنا و, توفنا و توفنا مع الابرار پروردگاه ما صدای منادی تو را شنیدیم که به ایمان دقوت می کرد که به پروردار خود ایمان بیاورید و ما ایمان آوردیم پروردگارا گناهان ما را ببخش و بدیهای ما را بپوشان و ما را با نیکان بمیران ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد پروردگارا، آنچه آنچرا به وسیله پیامبرانت به ما وعده فرمودی به ما عطا کن و ما را در روز رستاخیز رسوا مگردان زیرا تو هیچگاه از وعده خود تخلف نمیکنی. <تصفيق> انني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا, وأوذوا وَأُوذُوا فِي سَبِيْلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَ لَأُكَفِّرَ لَأُكَفِّرَ لاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سِيَأَتٍ وَلَا أُدْخِلَنَّهُ جَنَّاتٍ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي خداوند درخواست آنها را پذیرفت و فرمود من <تصفيق> عمل هیچ عمل کننده از شما را زن باشد یا مرد زایع نخواهم کرد شما هم نوعید و از جنس یکدیگر. آنها که در راه خدا هجرت کردند و از خانه های خود بیرون رانده شدند و در راه من آزار دیدند و جنگ کردند و کشته شدند به یقین گناهانشان را می بخشم و آنها را در باغ های بهشتی که از زیر درختانش نهرها جاری است وارد میکنم این پاداشی است از طرف خداوند و بهترین پاداشها نزد پروردگار است رفت و آمد پیروزمندانه کافران در شهرها تو را نفریبد متاع قلیل ثم ماواهم جهنم و این چیزی است و سپس جایگاهشان دوزخ است و چه بد جایگاهیست است لیکن الذين لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار ولی کسانی که ایمان دارند و از پروردگارشان میپرهیزند برای آنها باغهایی از بهشت است که از زیر درختانش نهرها جاری است همیشه در آن خواهند بود این نخستین پذیرایی است که از سوی خداوند به آنها می‌رسد و آنچه در نزد خداست برای نیکان بهتر است و این من اهل الكتاب من يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل, انزل, انزل, انزل خاشعين لله خاشعين لله, لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان الله سریع الحساب و از اهل کتاب کسانی هستند که به خدا و آنچه بر شما نازل شده و آنچه بر خودشان نازل گردیده ایمان دارند در برابر فرمان خدا خاضهعند و آیات خدا را به بهای ناچیزی نمی فروشند پاداش آنها نزد پروردگارشان است خداوند سریع الحساب است یا <بتارات> <سفران> ایوه الذین آمنوا صبروا و صابروا و رابطوا و, الله. و الله لعلكم تفلحون ای کسانی که ایمان آورده اید استقامت کنید و در برابر دشمنان پایدار باشید و از مرزهای خود مراقبت کنید و از خدا بپرهیزید شاید رستگار شوید.